افثانه ها جهانی پیچید از پیام ها و رمز و راز ها رو در خود نفته دارند افسانه یکی از غالب های که میشه از اون به اساس تفکر یک قوم و ملت دست پیدا کرد افسانه ها ریشه در طرز معیشه تاریخ مشترک اندیشه و جهانبینی و اوامل موثر و متعدد دیگه یک قوم دارن. افسانه ها بخشی از ادبیات شفاهی هر قوم و ملتی رو تشکیل میدن ادبیات شفاهی ریشه در فرهنگ و سنن و اندیشه مردمان هر منطقه داره قصد داریم سری بزنیم به دنیای افسانه های زیبا و شنیدنی مردمان با اصالت سرزمین بختیاری سرزمینی که مهد دلاوری های صلاح مثل شیر مردان خان و ابوالقاسم خان بوده در این مجال شبانه افسانه نارنج طلایی و توتی بالقرمز رو تقدیمتون می کنیم که برگرفته از ادب و فرهنگ آمیانی مردمان بختیاری و به نقل از کتاب های لوری که داریوش رحمانیان اون رو گردآوری کرده. روزی روزگاری در سرزمین زیبا و کهن بختیاری پادشاهی زندگی میکرد که صاحب شش فرزند پسر بود. پادشاه قصر بسیار زیبایی داشت و وسط حیات این قصر درخت نارنجی کاشه شده بود که به اون نارنج طلایی میگفتند. چرا که نارنجهای اون مثل طلا بر روی های سبز می درخشیدند و چشم هر رهگذری رو به طرف خودشون جلب میکردند پادشاه علاقهٔ زیادی به این درخت داشت و به جز خودش کسی دیگهای حق نزدیک شدن به اون رو نداشت حتی کار آبیاری و حرس کردن درخت رو هم خودش شخصا انجام میداد تا اینکه یه روز گرم تابستونی پادشاه برای رهایی از شدت گرما به زیر سایبون پهن و خنک درخت نارنج طلایی رفت تا لحظه ای استراحت کنه. در این موقع چشم های سیاه و تیزبینش بی اختیار در لا شاخ و برگ برگ‌های در هم تنیده شده چرخید و از چیزی که دید شگفت زده شد و از عصبانیت چنان فریادی کشید که همه از گوش و کنار قصر بیرون اومدن. بله. در لا شاخ و برگ های درخت جای یه نارنج طلایی درشت خالی بود. پادشاه در حالی که خون جلوی چشمای سیاهش رو گرفته بود با خشم گفت چه کسی جرأت کرده به نارنج های من دست رازی کنه ها؟ بعد تکون محکمی به خودش داد و شمشیرش را از غلاف در آورد و با لحن خشمآلودی گفت اگه تا چند لحظه که دیگه دزد نارنج طلای من پیدانشه همه رو گردن میذارم چونون ولولی در قصر افتاد که نگو و نپاس پادشاه تا غروب تمام افراد دست رو ماخزه کرد ولی به نتیجه نرسید که نرسید پادشاه به دور درخت نارنج طلایی میچرخید و زیر رب قرولند میکرد ساعتها فکر کرد و چاره تا بالاخره پسر بزرگش رو به نزدش فراخوند و گفت جان امشب باید تا صبح اینجا زیر این درخت نگهبانی بدی و فردا صبح دزد بدجنس رو به من تحویل بدی و بعد تکید کنند پرسید فهمیدی چی گفتم تا صبح نگهبانی میدی پسر بزرگ پادشاه تصدیق کنن پاسخ داد بله پدهشان بله شما مطمئن باشید دزد بدجنس رو به شما تحویل میدم مطمئن باشین با گفتن این حرف خشم پادشا کمی فروکش کرد شمشیرش رو به پسر داد و با قدم شمرده به طرف تالار قصر حرکت کرد با تاریک شدن هوا پسر بزرگ پادشاه در گوشه از حیات قصر در نزیگی درخت نارنج تلایی به کمین نشست نیمه های شب کم کم خواب چشم پسر را سنگین کرد و چند لحظه بعد به خواب امینگی فرو رفت چیزی به صبح باقی نمونده بود که پادشاه به سراغ پسر بزرگش اومد و وقتی دید که پسرش خوابیده با عصبانیت لگدی به پهلوی اون زد و گفت پاشو پاشو پاشو ببینم اینجوری نگهبانی میدی پسر با با چگی از خواب پرید و چشمهای خوابالودش رو به هم مالید و منمن کنن گفت آه، آه، من،, من من من پدر فقط یه لحظه خوابیدم پادشاه بر سرش فریاد زد ای خواب به خواب بری شمشیرش رو از دست پسرش گرفت و در هوا چرخوند و با لحن انتقام گفت آه اگه دستم به این دزد لعنتی برسه دستور میدم یک گلوله سرب داغ به اندازه همون نارنجی که دزدیده تو گلوش بندازن تا دیگه حوث دزدیدن نارنجهای طلای من به سرش نزنه روز هم گذشت و فرد شب نوبت به نگهبانی پسر دوم پادشاه رسید پادشاه رو کرد به پسر دومش و گفت خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم باید چار دونگ حواست جمع باشه و چشم روی هم نظری. و تکید ادامه داد حتی یک لحظه افلت کنید دوست بد جنس اومده و ننارننج طلای نازنین رو چیده و رفته. پسر دوم سیناشو جلو داد و با غرور گفت. پدر جان مطمئن باشید من دز رو دستگیر میکنم و به شما تحویل میدم مطمئن باشین. پادشا پوسخندی زد و زیر لب گفت، ببینیم و تعریف کنیم. بعد شمشیرش رو به اون داد و رفت شب که شد، پسر دوم در گوشه ایستاد و منتظر اومدن دوز شد چند ساعتی گذشت کم کم حوصله پسر از انتظار کشیدن سر رفت و شروع به آواز خوندن کرد و بالاخره خواب به سراغش آمد بله نزدیکی های صبح پادشاه که گمون میکرد پسر دومش دزد نارنج های تلایی رو دستگیر کرده با خوشحالی به حیات قصر اومد ولی از فاصلی چند قدمی صدای خورپوف پسرش رو شنید پادشاه که حسابی دمخ شده بود جلو رفت و لگد محکمی به پهلوی پسر زد و گفت پاشو پاشو پاشو ببینم پسری خوابآلود پاشو پسر, پسر سراسیمه از خواب پرید و وقتی پدرش رو در مقابل خودش دید به لکنت افتاد و گفت گفتم پادشا شمشیرش رو از اون گرفت و با عصبانیت گفت میدونم میدونم فقط یه لحظه خوابیدی همین <میدونم> آره میدونم پادشاه نومید و قرولون کنن به داخل غص رفت و پسر هم شرمنده و سر به زیر به دنبال اون برافت <میدون> شبهای بعد نوبت پسر سوم و چهارم و پنجم رسید اما اونها هم موقع نگهبانی خوابشون برد و روز به روز تعداد نارنجهای طلایی کم و کمتر می شد. تا اینکه تنها یه نارنج روی بلندترین شاخه درخت باقی موند. پادشا که دلش نمیخواست تنها نارنج درختش رو هم از دست بده در حالی که پسرهاش رو و سرزنش میکرد با قاطعیت گفت امشب دیگه باید خودم نگهبانی بدم و بعد با تأسف اضافه کرد آه، فقط یه دونه نارنج طلایی باقی مونده یه دونه نارنج های تلایی من کی شما رو دوستید در این موقع کوچکترین پسر پادشاه به آرومی به پدر نزدیک شد و گفت پدر جان اجازه بدین امشب من نگهبانی بدم برادرای دیگه از شنیدن این حرف خندهشون گرفت و از سر تغییر نگاهی به اندام لاغر و استخونی برادر گوچیکشون انداختن و در گوش هم دیگه پچ پچ کردن پادشاه از شنیدن این حرف پسرش خندهی کرد و بعد دستی از سر محبت بر موهای سیاه پسر کشید و گفت آه تو پسر مهربونی هستی ولی تو از عهده این کار بر نمیای پسر جون پسر کوچیک پادشاه گفت پدر درسته که من از برادرای دیگم کوچیکترم ولی به شما قول میدم که دوز نارنج های طلایی رو پیدا کنم و به شما تحویل بدم قول میدم پدرچون قول پادشاه گفت نه پسر جان، نه خودم دوست رو دستگیر می کنم پسر کوچیک که پادشا گفت پدرچان خواهش می کنم تو تو به برادرای دیگم اجازه این کار رو دادی خب بذار منم شانسم امتحان کنم پادشا گفت نه نه پسرم نمیشه فقط همین یه دونه نارنج برام باقی مونده اگه تو هم خوابت ببره و پسر کوچیک توی حرف پدرش پرید و گفت مطمئن باش من چیش رو هم نمیذارم قول میدم و اونقدر گفت و گفت و گفت تا بالاخره پادشاه اجازه این کار رو به اون داد شب آروم آروم از راه رسید و چادر سیاهش رو بر تمام قصر پن کرد. پسر کوچیک پادشاه زیر نور نقره ماه نشسته بود و از فاصله دور درخت نارنج طلایی رو زیر نظر داشت. ساعتی گذشت، پسر احساس کرد پلکاش داره سنگین میشه. فکری به خاطرش رسید. شمشیر رو برداشت و با نوک تیز اون انگشت خودش رو برید و بعد مقداری نمک روی اون پاشید درد و سوزش خواب رو از پلکاش پروند پسر خودش رو با شمردن ستاره های ریز درشت و دور و نزدیک سرگرم کرد در این موقع چیزی گنگ در تاریکی شب با حرکتی تند و سری از جلوی چشاش گذشت. پسر چشمش رو باز و باز در کرد و روی چیزی که میدید ثابت موند بله توتی زیوایی که چشمای مواجش توی تاریکی شب می و روی بالاش دو خط قرمز نمایان بود به تکدونه نارنج طلایی روی شاخه درخت نزدیک شد و به تندی با منقار نارنج رو برداشت و در یه چش به هم زدن توی تیلیگه شب فردا اون روز قبل از اینکه پادشاه به سراغ پسر بیاد پسر با خوشحالی به سراغ پدر رفت و تموم اون چرا که دیده بود برای اون بازگو کرد پادشاک از خوشحالی توی پوست خودش نمی گنجید از پسرش پرسید نشونه نشونه پسر جون از نشونه های اون توتی برام بگو چه شکلی بود پسر پاسخ داد روی بالاش دو خط قرمز کشیده شده بود پادشاه به فکر فرو رفت و بعد از چند لحظه سکوت گفت توتی بال قرمز این توتی متعلق به پادشاه کشور گل هاست و بعد رو کرد به پسرش و گفت حالا که شجاعت خودت رو نشون دادی باید به دنبال این توتی بری پسر هم خوشحال شد و فوراً اسبی زین کرد و به دنبال توتی بالگرمز برای پسر کوه به کوه رفت تا به کشور گلها رسی از این و اون سراغ پادشاه کشور گلها رو گرفت و خودش رو به قصر پادشاه رسوند نگهبانان قصر اون رو به حضور پادشاه بردن پادشاه با چهره افسرده و غمگین بر تخت بلند و زرین نشسته بود و توتی بالقرمز هم روی شونه چپونی ایستاده بود پسر جلو رفت و به پادشاه کشور گلها تعظیم کرد پادشاه با بی گفت زودتر کار تو بگو از اینجا برو اصلا حسدگی به راجی شنیدن را ندارم زودتر تو بزن پسر با لحن معدبانی گفت قربان من پسر پادشاه کشور نارنچای تلاییم اومدم این توتی بالغرمس رو که دزد نارنج های درخت پدرمه با خودم ببرم پادشاه با شنیدن این حرف گذبالود از جا نیمکی شد و توی چشمای پسر زل زد و پرسید تا چی گفتی؟ پسر با کمی دست با جواب داد قربان من من من عرض کردم و پادشاه با صدایی بلند توی کلامش پرید و گفت شنیدم شنیدم شنیدم شنیدم و بعد دستش رو بلند کرد و طوطی بالقرمز رو از روی شونش برداشت و در بقل گرفت و پوست زنان پرسید که اومدی توطی بال من منو با خودت ببریم پسر با صدای آرومی پاسخ داد بله خورمان بله پادشاه آروم دستی بر دو خط قرمز روی بال توتکی کشید و با لحن غمگینی گفت: این توت تنها هم تمام مونسه منه من نمیتونم اونو به تو بدم. پسر جلوتر رفت و پرسید: پس قربان تکلیف نارنجهای تلوی ما چی میشه؟ بعد ادامه داد: من به پدرم قول دادم که دوز های ترویج رو دستگیر کنم. پادشاه فکری کرد و زیر لب گفت نارننج طایی بله باید فکریم به با شما کرد. بعد پادشاه سکوت کرد و دیگه چیزی نگفت. چند دقیقه بعد با خوشحالی گفت. آه من حاضرم این توطی رو به تو بدم ولی پسر جون این کار یه شرط داره. پسر با تعجب پرسید شرط؟ چه نگاه پادشا به نقطه گنگ خیره موند و قم و اندوه در چهرهاش پسر همچنان منتظر شنیدن کلام پادشاه و کشور گلها به گوشی ایستاده بود پادشاه آه بلندی کشید و گفت آه شرط من اینه که تو پسرم رو که هفت سال تموم گم شده پیدا کنی و بیاری پسر به تندی پاسخ داد قبوله قبوله فقط اسم و شکل و شمایل پسرتونو بگین تا اونو براتون پیدا کنم و بیارم پادشاه هم با خوشحالی تمام مشخصات پسر گمشدش را گفت و پسر با سرعت از قصر پادشاه کشور گلها بیرون اومد. پسر رفت و رفت تا به دامنهاگ کوه بلندی رسید. در حاشه دامنی کوه چشمش به کلبه خود. پسر که خستگی تو پاهاش پیچیده بود نفسزنان به کلبه نزدیک شد و آروم با احتیاط در کلبه رو باز کرد. در انتهای کلبه دالو که همون پیرزن باشه نشسته بود. چهره کری و زشت دالوی پیرزن ترس و حراس در دل پسر انداخت. دالوی پیرزن با بی از پسر پرسید کیستی دنبال چی اومده؟ پسر با صدای لرزانی داد من پسر پادشاه کشور نارنج های و الانم دنبال پسر پادشاه کشور گلها میگردم اون هفت ساله که ناپدید شده و خبری ازش نیست دالوی پیرزن سرتاب های پسر رو برانداز کرد و با همون بی گفت گفت خالیه پسر دست پادشاه شد و ادامه داد تو تو خبری از اون نداری؟ دالوی پیرزن لحظه سکوت کرد و بعد خنده بلندی کرد و دندونای زرد و درشتش به یک باره نمایان شد و پسر کمی خودش رو عقب کشید. دالوی پیرزن گفت من از تمام عالم آدم خبر دارم پسرش پسر با خوشحالی پرسید پس لابد از پسر پادشاه هم خبر داری نه؟ دالوی پیرزن با غرور سری تخونداد و گفت عربته که دارم اگه اسب زین سفید پادشاق و کشور گلها رو برم بیاری اون وقت منم جای پسر گم شده یه نشونم نجونم پسر با خوشحالی پذیرفت و راهی کشور گلها شد و هفت شب و هفت روز بعد سوار بر اسب زین سفید پادشاه به نزد دالویه پیرزن برگشت بلوی پیرزن در دامنه کوه به انتظار اومدن پسر ایستاده بود و به محض دیدن اون به پیشوازش رفت و دهنه اسب زین سفید رو از دستش گرفت و گفت من پسر پادشا رو به شکل روباه دمدرازی دروردن که توی بیابون زندگی کنن پسر پرسید توی پیابون روباهای های دیگه هم زندگی می کنن من, من از کجا بدونم؟ کدون روباه پسر پادشاهه؟ دالوی پیرزن پاسخ داد روباهی که دمش از بقیه یه روباه هایی دیگه بلند اون پسر پادشاه است بعد هم اضافه کرد تو باید سر اون دم دراز رو ببری تا پسر پادشاه از جلدش بیرون بیاد. پسر راه بیابون رو در پیش گرفت و بلخره روباه دمدراز رو که همون پسر گمشده پادشاه بود پیدا کرد و سرش رو برید ناگهان پسر جوونی روبروش قد علم کرد پسر دست پسر پادشاه رو گرفت و پیش پدرش یعنی پادشاه کشور گلها برد پادشاه دستور داد تمام کشور گلها رو چراغونی کردند و هفت شب و هفت روز جشن و سرور برپا کردن بعد هم توتی بالقرمز رو به همراه تمام نارنچای تلایی که دزدیده بود به پسر داد پسر هم خوشحال و با دست پر به کشور نارنچای تلایی و نزد پدرش افسانیۀ نارنج طلایی و توتی بال قرمز رو از سرزمین بختیاری بزرگ و زیبا براتون نقل کردند در ادبیات شفاهی ایران زمین که ها بخش عظیمی از اونها رو در بر میگیره نکات ارزنده و ارزشمندی وجود داره که ریشه در عقاید و باورهای هر قوم داره و حکایت لحظه های تلخ و شیرین مردمان کشورمون رو به ساده ترین و روانترین شکل زبانی بیان میکنه. ما اینه که این افسانه های بظاهر ساده رو همه دریابیم و نکات ارزنده اون رو بهتر بفهمیم و اونها رو در زندگیمون به کار ببریم این برامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت ساله پور اجرا مهران دوستی صدا داریوش گودرزی و تهیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانی دیگر بترود.